چشمهایش را حراسان گشود خودش بود خابیده در رخت خواب راحت و خوشبوی آنا. همه جا ساکت بود صدای نفس های گاو از توی تبیل شنیده میشد آنا پای ستون چوبی خابیده بود و گربه همانجا دور خود چنبره زده بود و منظم نفس میکشید دوباره توی رخت جابجا جا شد میخواست در آسود ترین شکل ممکن قرار بگیرد تا وحشت مرگ غریبانه در باتلاق را فراموش کند لاهف را بالای بینی کشید گرمای نفسش را زیر گلو و دور گردنش احساس کرد. دریاچه پشت پلکایش گسترده بود. موچهای ریزش مانند پولک قزلالا می درخشیدند. میان آن همه پولک طلایی به پشت خوابیده بود و آرام آرام دست پایش را تکان میداد و به نرمی روی آب می و پیش میرفت. چشمهایش را بست. دریاچه مثل گهواره تکانش میداد و او کم کم به خواب آرامی فرو میرفت. با صدای سماور زغالی آنها از خواب بیدار شد. می گفت از روسیه برایش آوردند. اسمش را گذاشته بود سماور ورشو. مسی رنگ بود. وقتی آب مخزنش داغ می صدای زمزمه یک نواخت و خوشایندی از آن بر آنا سفره صبحانه را انداخت. شانه به شانه سماور نشست و او را نگاه کرد. اسمایل با صدای خوابالود سلام داد. سلام آنا. سلام نور چشمم. پاشو کم کم خیلی خوابیدی خسته بودمانا خیلی خوابم میومد میدونم نور چشمم حالا پاشو سبونتو بخور از جا بلند شد آفتاب از در دالان تابیده بود تو بیرون هوا روشن بود شمرده شمرده راه میرفت. زمین زیر پایش نه میلغزید و نه را به درون فرو میکشید محکم و امن بود حالا قدر زمین را میدانست. تا به حال آن را نادیده گرفته بود سونا گفته بود تا سال مادرش تمام نشود حاضر نیست لباس سیاهش را در بیاورد اسوار هم پیغام داده بود او را با همون لباس سیاه به خانه خواهد برد سرخان هم پشت او درآمده و به سونا گفته بود تو دیگه تو این خونه جایی نداری باید بری خونهی سرکار اسوار. سونا مثل صفورا به سرسختی شهره بود تا پدر و مادرش بودند همیشه حرف حرف او بوده حتی اگر شده گریه و قهر بکند بعد از فوت پدر سفورا نازش را می کشید و نمیگذاشت خار شود حالا هم که یتیم شده بود باز هم مردم فکر می کردند حرف حرف دختر خواهد بود غیر از آنباشد قشقرق به پا خواهد شد و حتی بعید نیز سناک کار دست خودش بدهد که صدایش از برفش در هم بیرون برود اما خیلی نگذشت که او از حرفش برگشت و قبول کرد که بیش از سال مادرش به خانه عثوار برود با این شرط که عروسی و شادی در میان نباشد این خبرها را آنا به اسمایل آورده و اضافه کرده بود سنا از حالت عادی خارج شده اگر قریبهای او را ببیند فکر میکند خل شده نزدیکترین همدمش اسب ملاست حیوان هم فقط از دست او علف میخورد و به او سواری میدهد حتی دیدند که وقتی سونا گریه میکند اسب هم اشک می‌ریزد. حالا هر دو از خرد و خوراک افتادند شدهاند یک پوست و استخان اسمایل با شنیدن این خبرها بیشتر آشفته میشد امیدوار بود آنچه میشنود شایعه و یک کلاغ و چهل کلاغ زنان بنفشه دره باشد میخواست کاری بکند تا او را از گردابی که درونش افتاده بود نجات بدهد. اما راه چاره به نظرش نمی رسید تنها میتوانست بنشیند و منتظر حوادث بماند با کنار هم گذاشتن اخبار رادیوهای داخلی و خارجی به این نتیجه رسیده بود که رژیم شاه مجبور به عقب نشینی در برابر خواسته های مردم شده و ناگزیر هر روز امتیازی به ملت می دهد. دیگر از آن فضای خفقان و بگیر و به بندهای شبانه خبری نبود بنابراین باید به این تبعید خودخواسته پایان میداد و باز هم به صفحه انقلاب میپیوست قیبتش اگر چند ماه توجیهی داشت حالا دیگر بیدلیل بود باید زودتر بنفش در را ترک میکرد و به تهران میرفت با خود میگفت حتی سونا هم نباید مانع رفتنم بشه حتی اون البته کلمات قسمت پایانی را آهسته و با ترس میگفت گویا هنوز میان رفتن و ماندن در تردید بود و نمیتوانست تصمیم قاطعی بگیرد. شاید محکمترین عامل برای ماندنش در آنجا فداکاری سونا برای او بود. آن دختر روستایی حاضر شده بود زن یک اسوار در حال بازنشسته شدن بشود. در عوض او از بازداشتگاه آزاد شود و پایش به دادگاه کشیده نشود. این کار کوچکی نبود. نمیتوانست چشم برام ببندد و نادیده بگیردش. همین پایبندش کرده بود. چند بار به آنها اصرار کرده بود که حتما سنا را به خانه بیاورد تا با هم حرف بزنند اما سنا نیامده بود و گفته بود حرفی برای گفتن ندارد این رفتار اسمایی را وادار به ماندن کرده بود از یک طرف آن فداکاری از طرف دیگر این بیمحلی مؤمایی شده بود باز هم به رادیو پناه برد قاره به قاره کشور به کشور شروع به گشتن کرد هر ایستگاهی که گویندهش به زبان فارسی حرف میزد. رادیو را به گوشش می و خوب گوش میکرد. روزی که قرار شد سونا را ببرند، باد غربی شروع به وزیدن کرد. این باد هر وقت میامد چندین شبانه روز میوزید. باد تند و گرمی بود که از سهره آفریقا و مدیترانه میامد. در زمستان از سرما همه چیز را خشک میکرد و در بهار و تابستان از گرما. همیشه گرد و خاک به همراه داشت. دلگیر و غمانگیز. هیچ موجود زندهای هنگام وزش باد غربی حاضر نبود بیرون از آشیانه خود بماند گلها گلبرگهای های خود را میبستند و برگها مچاله می شدند و آدمها به خانه پناه می بردند. آسمان خالی از پرنده و پروانه می شد. باد مانند اصفی وحشی هم می و در کوچه ها می تاخت. ساعتی از ظهر گذشته بود آنا لباس های تازه را پوشید و آماده رفتن به خانه سرخان شد بزرگ زنان بنفش دره بود و حضورش در عروسی و عذاب مجلس اعتبار میداد. پیش از رفتن راه پشت بام را به اسماعیل نشان داد. راه پله پشت درخته گلابیه. از اون بالا میدون دیده میشه. مواظب باش خود نشی. در دالان را باز کرد. با تنور کشید و هجوم آورد تو. آنا با عجله در را بس و رفت. با نبود آنها خانه بوی غم و غربت داد. زیاد نتوانست دوام بیاورد. او هم از دالان خارج شد باد با درخت‌ها گلاویز شده بود و آنها را تا کمر به زمین میخماند ناله شاخه های خشک و تنه های پیر و پوسیده بلند بود همانطور که آنا گفته بود راه پله پشت درخت گلابی پنهان بود به آنجا که رسید به جای پله های منظم چند سنگ را دید که در گوشه دیوار طویله تا بالای پشت پام تعبیه شده بودند بینظم و با فاصله های بلند و کوتاه آنجا راه دیگری نبود. آهسته از پله سنگچین بالا رفت. پشت بام پر از اللف خودرو مخصوصاً خاکشیر بود. باام به هم راه داشتند. روی آخرین بام منتهی به میدان پشت از بافه‌های های هنوز باقی بود. نیمخیز این مسافت را طی کرد و به پشتهی علوف رسید. آنجا پنهان شد. به اطراف نگاه کرد. از شدت باد جمنده روی باام ها دیده نمیشد. آهسته گردن کشید و نگاهی به میدان انداخت جیپ جاندرمری گوشهی پارک بود قرکیشی نیمتنش را روی شانه انداخته بود و از ماشین مراقبت میکرد تا کسی آن نزدیک نشود باد توی آستینهای خالیش می و آن را بلند میکرد قرکیشی در یک زمان هم مراقب جیپ بود هم مراقب نیمتنش یک دستش هم به کلاه لبدارش بود تا باد نبرد گاهی چنان با محبت دست روی کاپوت ماشین و آن را نوازش آن میکرد. که گویی فرزندش را نوازش می‌کند اسوار نزدیک خانه سرخان پرسه میزد لباس تازه پوشیده بود با درجه های براق سینه جلو داده معلوم بود انتظار کلافش کرده است ادی از اهالی بنفشه در پناه دیوار مسجد جمع شده بودند از دور به کسانی شبیه بودند که منتظران تا زیر تابوت بروند و مرده ای را مشایعت کنند باد گرد و غبار را بلند می‌کرد و بر سر و رویشان می‌ریخت نه جماعت شنیده میشد. و نه صدای شرشر چشمه میآمد خورشید از پشت قبار میتابید چرک تاب و كدر اهالی منتظر بودند حتی اسحاق هم بعد از چند بار رفت و برگشت به خرابه آفتاباش را کنار در دکان گذاشته بود و چشم دوخته بود به در خانه سرخان سلطان با دوچرخش دور میدان جولان میداد سرخوش بود به هرکس که كه رسید چیزی میگفت و میگذشت و باز برمیگشت بلاخره لخره دروازه خانه سرخان باز شد و اسب سفید از آن بیرون آمد سنا با لباس همیشگی روی آن نشسته بود تنها روسری سفیدش تازه بود که با یک بال آن یاشمغ بسته بود سرخان چند قدم عقبتر میآمد لباس عیدش را پوشیده بود با همان کلاه لبهدار و کراوات خوشحال به نظر می رسید استوار به استقبال عروس رفت تا افسار اسب را به دست بگیرد اما اسب گردن کشید و سرجم و اجازه نزدیک شدن نداد استوار سوار ناگزیر به سرخان پیوست اسب سوار طول میدان را طی کردند و به سمت جاده رفتند بنفشه ها به صورت پشته های بیشکل و پراکنده به حرکت درآمدند تا عروس و داماد را مشایعت کرده باشند قوار راه بر سر و صورتشان می‌نشست اسب از پای دیوار خانه‌ای که اسمایل در پسان پنهان بود و مخفیانه نگاه می‌کرد گذشت ناگهان باد گره روسری سونا را گشود و او وقتی خواست آن را نگه دارد. سرش را بالا گرفت و در یک لحظه همدیگر را دیدند تا پیش از آن گویا اسمائیل هنوز باورش نشده بود که سونا را میبرند حالا داشت آن را با چشم خود میدید اسب او را با خود میبرد هر لحظه دور و دورتر میشد و او کاری از دستش بر برنمیآمد حتی نمیتوانست خودش را نشان بدهد او سوار به همراه سرخان و قرهكشی برگشت و سوار جیب شد و راه شهر را در پیش گرفت جماعت برای جیپ راه باز کرد تا به اسب و سوارش برسد. مردم در حاشه در توقف کردند اما اسب راه شهر را در پیش گرفت. جیپ پاسگاه با فاصله کوتاهی پشت سر آن میرفت. میدان خالی شد سلطان هم رفت. اسحاق در تاریکی دوکانش دیده نمیشد. با دیوانوار میوزید و ناله میکرد و به های را از صحرا آور و در کنج و پناه دیوارها تلنبار میکرد. کم کم سر وکده کنندگان پیدا میشد. آنها در پشت پرده ای از خاک و غبار پنهان بودند. باد در لباس بلند زنها میپیچید آنها را به صورت کلاف در میآورد. خودش را پشت بافه های علف پنهان کرد. صدایی از آن همه جماعت بر نمی‌خواست. حتی صدای پایشان هم شنیده نمیشد. گویی تعدادی شبه با سرهای فرو افتاده و پشتهای خمیده راهشان را گم کرده بودند و حالا به بنفش در رسیده بودند. باز هم نیمخیز به طرف راه پله رفت از آن بالا برفش در مثل قبرستان شده بود دیوار خانه ها در حال ترک برداشتن و فروریختن بود از پله های سنگچین پایین آمد با سرعت از لابلای تنه درخت های گلابی گذشت و به در خانه رسید داخل دالان شد و در را از پشت بست هیاهوی باد و شاخه های خوش کم شنیده شد اما تاریکی دالان باریک هم برایش دلگیر بود آرامش سابق از خانه رخت بربسته بود. حتی نگاه های مهربان گاو نیز در او تأثیری نکرد. از مقابل طویل گذشت و به اتاق رسید. پای ستون چوبی نشست و سرش را به آن تکه داد و زانوهایش را در قلاب دستهایش گرفت و به فکر فرو رفت. گربه چند بار پیش آمد و به رسم معلوف خود را به پاهای اون مالید. اما نوازشی ندید و برگشت. این بار پیشانیش را روی کاسه زانوهایش گذاشت و چشمهایش را بست. سونا را دید که در نیزار میدوید و با کنار زدن ساقهی نیها به دریاچه نزدیک می‌شد. آنا نگران نگاهش می‌کرد و او در پرتو درخشان خورشید فروردین به ترکیب رنگ‌های نواز لباس‌های سونا خیره مانده بود که در پشت نیها میلغزید و مانند یک رؤیا دور می‌شد. با صدای باز شدن در دالان سرش را بلند کرد. صدای آنا از همانجا بلند شد. خونه اسمایل خونم؟ چند لحظه بعد آنا بالای سرش رسید و با نگرانی پرسید: پس چرا اینجوری تو تاریکی؟ جابجا جا شد و آهسته پرسید: رفت؟ آره رفت، بردنش. سکوت شد. آنا سرگردان در اتاق چرخی زد و گفت: وای دلم گرفت خدا، این دیگه چه بادیه؟ انگار دنیا به آخر رسیده. کمی راه رفت. تا از آن هنوز خیلی مونده. اما هوا مثل شب تاریک شده. به طرف چراغ گردسوز رفت لامپ‌های آن را برداشت و تویش ها کرد بخار دهانش درون شیشه پیچید و چسمید به دیواره آن ای را که همیشه پای گردسوز بود مثل فتیله تاباند و داخل شیشه فرو برد و به کمک دو انگشت بخار درون آن را پاک کرد شیشه شفاف شد فتیله را کمی بالا آورد و شعله کبریت را به آن گیراند و سپس لامپ‌های شیشهای را روی فتیله گذاشت ابتدا دیوار تاخ روشن شد سپس نیمرخ آنا که به دقت به شعله لرزان چراغ چشم دوخته بود بعد هم نوبت بقیه قسمت های اتاق بزرگ بود تا اندکندک روشن شود اسماعیل تکان نخورد نور چراغ بیشتر دلگیرش کرد بیموقع روشن شده بود آنا سراغ سماور رفت چای درست کنم با هم بخوریم میل نداشت حتی حال مخالفت هم نداشت شعله چراغ کم کم جان میگرفت. آنقدر که دود تیر رنگی از نوک فتیله قد کشید از جا بلند شد به طرف تاخچه رفت و فتیله را یک پیچ پایین کشید. آنا متوجه شد دستت درد نکنه نور چشمم چراغ خونم دوباره پای ستون نشست و سرش را به آن تکه داد آنا در حال رفت و آمد گفت صدا از کسی بلند نمیشه مثل اینکه همه از بنفش در رفتن اسمایل پی حرف او را گرفت منم میرم اونا ایستاد و نگاهش کرد. تو هم میری؟ میرم، طاقت ندارم دیگه. یعنی میخوای بازم منو تنها بذاری؟ تازه داشتم عادت میکردم. حالا انشالله کی میخوای بری؟ همین حالا، الان، شایدم برای شام نموندم. این بار اونا زد، زبانش بند آمد. پس از چند لحظه گفت: چرا این همه زود؟ عجله نکن بذار باد بخوابه. اون وقت با خیال راحت راه بیفت. نمیتونم آنا، عاطل و باطل موندم، الان مادرم دخ کرده. خیلی خوب، حالا که روزه، ممکنه ببینم به پاسک خبر بدن. کن شب بشه، شام بخوریم، فکرامون رو هم بریزیم. اسمایل بی اراده از جا بلند شد. آنا اما امشب من نمیمونم، میرم، اجازه بده. بشین حالا، گفتم که... اسمایل نشست، استکان چای را با نلبکی گذاشت جلوش. امشب از کدوم راه بری؟ راه پایین. با این تره. میندازم از کنار دریاچه و باطلا خودم خودم می رسونم شهر. به این آسونیا هم نیست که فکر می خدای نکرده بازم تو بااساق میفتی دیدی که چه جهنم در ره؟ این دفعه چشمامو باز میکنم تا نیفتم عوضش اونجا از مأمور و ژاندانم خبری نیست. چرا هست؟ شبا چند مأمور اونجا کشیک میکشن میانو میرن مگه ممکنه نپان اسماسیل استکان را توی دستش فشرد دستش داغ شد. اگه امشب نرم نمیشه باید برم قربونت برم امشبم بری مجبوری تا صبح تو شهر آواره بشی ماشین پیدا نمیشه بمون شب خوب بخواب صبح با ستاره ها برو اون موقع ماشینای صبح رو هستنی ان میری اسمایل چایش را سر کشید. اون وقت خیال منم راحت میشه میدونم که رفتی سوار شدی و رسیدی اما اگه تو این ظلمات بری من دیوونه میشم نمیدونم چی به سرت میاد اسماعیل سکوت کرده بود. چای را مزه مزه می کرد. یه شب دیگه طاقت بیار. من بعد تو رو نمی‌خوام. دلم میخواد سالم و آسوده به تهران برسی. حرفی نزد. در سکوت چاییش را خورد. آنا یکی دیگر هم ریخت. بی کلمه ی حرف دومی را هم خورد و کنار کشید و کمرش را به دیرک تکیه داد. آنا پرسید: می‌خوای سرشیر برات بیارم با نون بخوری؟ اصلا اشتها ندارم. یه ذره هم. فقط میخوام بخوابم. این باد کلافم می آنها نتوانست مخالفت کنند. بلند شد یک لحاف و بالش آورد و برد بالای اتاق گذاشت. پاشو بخواب. شام صدت می کنه. بلند شد و سنگین به آن طرف رفت. به جای نشستن روی زمین خودش را رها کرد. سرش را روی بالش گذاشت و لحاف را تا خیر خیره بالا کشید. چشم به سخف تیره اتاق و چوب ها و تخته های فرسوده ای آن دوخت. باد از بیرون سر بر دیوار میکوبید و روی بام پنجه می کشید و خراش میداد دیوانه شده بود انگار میخواست آنقدر خودش را به در و دیوار و دار درخت بکوبد تا بنفشه را شخ بزند و صاف کند حوصله شنیدن این همه شیون و فریاد نداشت را تا روی سرش کشید شاید که صدایی نشنود صدای نفسهایش را شنید و صدای قلبش را تبلعزا بود منظم و لرزاننده کسی آهسته تکانش میداد بلند شو، هوا تاریک شده با عجله نیمخیز شد آنا بالای سرش بود با چادر نمازی آماده ی نماز با چشمای خوابالود و حراسان به اطراف نگاه کرد شب خوابت نمیبره بلندشو نمازتو بخون از اون دادن من که صدایی نشنیدم این باد گوشامو کر کرده ساعت چنده؟ نمیدونم قربونت برم ساعت بلد نیستم به ساعت نگاه کرد دیر وقت بود، اقربه ها با هم پچ پچ می کردند، بلند شد، آفتابه را در طویله پر کرد و به حیات رفت، باد هنوز سمکوب می تاخت و شیهه می کشید، نفس بنفش دره را گرفته بود، شاخه ها دیگر مقاومت نمی کردند، مثل موم نرم شده بودند و خموراست می شدند، در عوض آسمان صاف بود و پر از ستاره، ماه امشب دیر در آمده بود و هنوز داشت از شیب آسمان خودش را آهسته بالا می کشید. باد سرد بود تَم گس میداد. به خانه برگشت مقابل نگاه مهربان گا وضو گرفت و در اتاق به نماز ایستاد آنها بلند شده بود و چادرش را جمع می کرد، شتابی برای تمام کردن نمازش نداشت ستاره در آسمان جا خوش کرده بودند با رفتن آنها او هم باید راه میافتاد.